حکایت، یکی بر سر راهی مست خفته بود و زمام اختیار از دست رفته، آبی بر وی گذر کرد و در آن حالت مستقبه او نظر کرد. جوان از خواب مستی سر براورد و گفت، ازا مر روی به لقب مر روی کرامن، ازا رأیت کن و حلیمن، یا من تو قب به و عمری لمنا تمر و کریمن. متابی پارسا روی از گنه به بخشایندگی در وی نظر کن. اگر من نا مردم بکردار تو بر من چون جوانمردان گذر کن.